اس من چی بگم؟ یک ماه و نیم بود دنبال خانه می جنشته. صاحب خانه به گفته بود تو دو این دور زمونه خونه صد و سیلی ده نوبره والا کجا چی خونه میاد با این بایی بود؟ شیروونیش سفال مارسی سنگ توالتش مرمن درهاش رنگ روغنی چه خوب منم اگه همچی خونه با صد و سیلی را اجاره گیرم بیاد اجارش میکنم کنم از تفنن شکری بیک گفت دوازده سال تو این خونه مستجریم به خونه تو مثل خونه خودم رسیدگی میکنم اگه خونه خودم بود اینقدر بهش نمی رسیدم تازه دادم رنگ و نقاشیش کردم راه پله رو تعمیر کردم نرده های پلکان رو عوض کردم اما هرچه می گفتفتفاید این نداشت. میدانست صاحب خانه میخواهد آنها را بلند کند تا بتواند اجاره خانه را زیاد کند اما با خودش می گفتفت هر چقدر که اجاره خانه را بیشتر کند از ماهی 20 لیره که نمیتواند بیشترش کند. گفت، اجاره رو بکنیم ماهی صد و پنجاه لیره. صاحبخانه خانه خندید، سد پنجاه لیره؟ پول سیگارم هم نیست؟ شکری به پیش خودش حساب و کتاب کرد. اگر خودش سیگار را ترک می کرد، می توانست ماهی پانزده لیره سرفجوی کند. به صاحبخانه گفت، به خدا حق داریم، خونتون تو این وضع گرونی خیلی بیشتر از صد و پنجاه لیره می من آدم بیانصافی نیستم اگه میبینین نمیتونم اجاره خونه رو بیشتر از این بالا ببرم، باور کنین واسه خاطر بیپولیه. صاحبخانه گفت، آدم باید پاش و قد گیریم اشتراس کنه. شما هم قد پولتون خونه گیر میارین. شکری بیک، اگر میتوانست خانه مناسب با پولش پیدا کند، یک دقیقه آنجا نمیماند. صد و شست و پنگ لیره باشه، صاحبخانه باز هم خندید. <تصفيق> پول تو جیبی پسرم هم نمیشه. شکری بیک با خودش گفت اگر پیاده به سر کارش برود و برگردد می تواند ماهی بیست لیره دیگر جویی کند گفت صد و هشتاد و پنج لیره بدم صاحبخانه گفت اینطور که به نظر میاد شما داری سر به سرم میذاریم این آپارتمان بقلیو که میدونین کجاست اتاقای کوچیک پذیرایی تنگ و تراش اون وقت اجارش میدونین چقدره؟ سیصد و پنجاه لیره خب مگه من این خونه رو از سر راه وردم کمتر از ماهی سیصد لیره نمیدم. اگه شما بلند شید 400 لیره هم میتونم اجارش بدم. شما تخفیش کنید. خونم اگه خالی بیفته بهتره. حداقل اغر نمیشه. شکری بیک اگر سیصد لیره اجاره میداد از درآمد ماهانش برای خانواده 4 نفرش 80 لیره میماند. کار به دادگاه کشید. صاحب خانه گفت: خودم میخوام تو خونم بشینم. شکری بیک محکوم شد خانه را شکری بیک یک ماه و نیم بود دنبال خانه میگشت زمستان هم شده بود در سرمایه زمستان که نمیتوانستند توی کوچه بمانند از صبح تا شب زیر برف و باران توی گل و شل دنبال خانه میگشت خانه ارزانتر بهتر از خانهای که ساکنش بودند پیدا نکرده بود در خانههایی که اجارهشان دویست لیره بود جا نمیشدند آن روز از بس دنبال خانه گشته بود پاهایش تاول زدهو از بس به دلال های مسکن پول داده بود جانش به لبش رسیده بود علاوه بر همه اینها اولش زیر باران بعد هم زیر برف مانده بود سرما تا استخانهایش نفوذ کرده بود آب توی کفشش رفته بود و پاهایش از سرما و خیسی ورم کرده بود دم غروب برف بند آمده بود اما لباسهای خیسش به تنش چسبیده بود آه میکشید و با خودش میگفت. یه نفرم نیست آدم باش درده دل کنه اگه یکی رو ببینم و دردم رو بهش بگم یه خورده سباک میشن دلش پاک بود چون تا این فکر را کردید که یکی از دوستان قدیمیش از روبرو دارد میآید خیلی وقت بود زوکایی را ندیده بود شاید در پیدا کردن خانه کمکش میکرد. کرد دست کم می توانست با او درد دل کند ببین کی اینجاست سلام شکری بیک سلام زوکایی جون خبره؟ اصلا نپرس. تو چطوری؟ چه خبر ها؟ شکری بیک گفت. سلامتی. در ظاهر که وضع دوستش از خودش هم بدتر بود. زکایی بیک پرسید. از کجا میای؟ آی؟ شکری بیک که خیلی وقت بود آماده ی درد دل کردن شده بود گفت. آخ برادر نپرس. بچیلی گرفتارم. یه ماه دنبال خونه می کردم. صاحب خونه داره بیرونمون میکنه امروز هم امروزم از صبح دنبال خونه بودم. زیر برف و بارون پدرم در اومد ببین چهجوری دارم میلرزم اگه مریض نشم خوبه میخواست حالا که سر صحبت باز شده هرچه در دل دارد خالی کند اما دوستش گفت باز مال تو جای شکرش باقیه پس من چی بگم آخ برادر تو این دور زمان خونه ساختن یعنی گرفتاری نمیدونم خبر داری یا نه من یهتیکه زمین خریده بودم دنبال زمین خوب گشتن و خریدنم واسه خودش دردسرییه ها خلاصه اونو برش کن. 90 هزار لیره دادیم، یه تیکه زمین خریدیم شکری بیک گفت آره، اینجوریه که گفتم، صاحب خونه داره بیرونمون میکنه. از دادگاه هم کاغذ گرفته زکای بیک گفت زمین و خریدم، ده روز نگذشته بود مشتری واسهش پیدا شد پنجاه هزار لیره، حتی 200 هزار لیره می دادن هرچی می فروشی نیست، مگه دست از سرم ور می داشتن چنون درد سری کشیدم شکری بیک، تعریف کنم. مال تو باز جای شکرش باقیه. راست میگی برادر. بعدش خدمتون عرض بکنم. به صاحب خونه گفتم بیا جارو خونه رو زیادش کنیم. حتی راضی شدم صد هشتاد و پنج لیره بدم. آخ آخ آخ. اگه گرفتاری منم با صد و پنج لیره حل میشد. چه دردی داشتم. تو یه دونو نم بخور. صد تو بده به گدا که بسید من گرفتار نیستی. با خودمون گفتیم. تو این زمین یه خونه دو طبقه میسازیم. این زمونه با عمله و برنامه سر و کله زدن نمیدونی چقدر گرفتاری داره تو سرت نیاد متوجه نمیشی هر چی تعریف بکنم بیفایده هست. من قصدم این بود یه خونه نقلی دو طبقه بسازم با سه تا اتاق خواب و یه سالن آخ شکری بک نمیدونی چه سختی‌ها کشیدم هنوزم میکشم. آخ آخ زکای جون. حالا صاحب خونه هم به ما میگه بلنشین از خونه اگه بدونی تو اون خونه کلی خرج کردم دیوار مسترها خراب شده بود همین چند هفته پیش 15 لیره دادم درستش کردن. حالا یارو میخواد بیرونمون کنه بزار هزار بیرون کنه هر. مال تو باز جای شکش باقیه. پس من چی بگم اگه تو هم مثل من میخواستی خونه بسازی اون وقت چی میگفتی؟ مادرم گفت حالا که داری خونه میسازی و پول خرج میکنی؟ یه دفعه‌ای آپارتمان نقدی سه طبقه بساز که به یه دردی بخوره دادم پیهارو رو کندن اول کاری چهل هزار لیره پر زد و رفت شکری بیک، آدم از حال روز هم دیگه خبر ندارن ایبی نداره زکایی بیک ای بابا، چقدر سردم شد سرما تا استخونه رفته صبح تو تاریکی زدم بیرون هنوز دنبال خونم فقط همین امروز پونزه لیره به دلالا دادم اون که چیزی نیست شکری بیک همه افتاده تو دلال بازی و بازار سیاه به چونه خودم، فقط واسه شیشه های پنجره دو هزار لیره دادم شش های درها و شش های جدا کننده مونده تو باز ازت خوبه برو شکر کن اگه جای من بودی چی میگفتی؟ هر وقت خاصی خونه بسازی. اون وقت میفهمی گرفتاری و دردسر یعنی چی خانم میدونی چی گفت گفت حالا که داری آپارتمانو میسازی تو هر طبقش دو تا واحد بساز بشه شش واحد دیدم راست میگه شروع کردیم به ساختن حالا واسه تعریف میکنم به نظر آسون میاد نه بابا خدا میدونه چه سختیا کشیدین آقا تو اکسرا یه خونه پیدا کردم یه اتاق داره با یه راه رو رازیم چیكار به محل کارم دوره خب باشه چار چی صبح زودتر از خونه میام بیرون اجارشم میشه گفت همه صد و پنج لیره از شیکم زن و بچهم میبورم اما صاحب خونه شیش ماه پول پیش میخواد اخ شکری بگ تو هم خیال میکنی یه مشکلی داری ها بابا انگار نمیتونم بکنم آه آهم میخواهی نیست سیمان میخواهی نیست همه تو بازار سیاهه چه بدبختی ها کشیدم که نگمو نپرس تو چون خونه نساختی این گرفتاری ها رو درک نمی کنی. درک نمیکنم برادر درک نمی کنم خلاصش بهت بگم زکایی بک برادر عزیزم امسال سیاهی زمستون وسط کوچه میمونی باز ماره تو جای شکرش باقیه. صابخونه دو روز دیگه بندوستاتمونو می ریزه وسط کوچه یه چیزی بهت بگم بیشینو شکر بکن سه طبقه آپارتمونو ساختیم درست همون موقع که میخواستیم پشت بومو درست کنیم مادر زنم گفت کار دیگه زوکایی روی ساختمون دو طبقه دیگه بساز فردا زن و بچه ها دعواد میکنن. با بنا یه جور سر و کله بزن با عمله یه جور با شهرداری یه جور دیگه تو باز بذت خوبه حداقل از این گرفتاری ها نداری ندارم زوکایی بیگ ندارم شکر بکن شکر میکنم. نمی دونم چی چیکار کنم یه چند تا خورده ریز داریم اگه اونا نبودن یه چند وقتی تو خونه پیدا کنیم گوشه مسافرخونه خونه سر میکردیم یه چیزی به بگم گوشه مسافرخونه موندن از آپارتمان ساختن بهتره مگه من کم میکشم چرا باورت نمیشه باور میکنم برادر راست میگی مال تو باز جای شکرش باقیه شکر میکنم خدا رو شکر حالا گیریم اون چند تا خورده ریزم فروختیم خب بعدش چی همش لازمه بعدن هم نمیتونم بخرم سریجاش بذارم. چون الان مفت از میخرن، همه از اون میره. خب بره. بره. ما که چیزی نگفتیم. بره. طبقه پنجم آپارتمان رو هم ساختم. اما این که من چی کشیدم فقط خودم میدونم و خدای خودم. بعدش داداشم اومد گفت، حالا که ام آپارتمان رو ساختی، بیا یه طبقه روش بسازی. الان همه این کارو میکنن میکنم. حالا به خوب و بدش کار ندارم اما مایای چهارصد 500 لیره اجارش میشه آخ که چه کار سختیه تو این زمونه یه طبقه قاچاقی ساختن به این پول بده به اون پول بده درست ده هزار لیره دود شد رفت هوا تو از این چیزا خبر نداری یا فکر میکنی تو درد سر افتادی من اگه جای تو باشم شب و روز شکر میکنم حق داری زوکایی جون اگه داشتم اگه داشتم تو این زمستون بچهها رو تو کوچه ول شیش ما پول پیش بده بارا دیه سخف داشته باشه اما ندارم به خدا ندارم نداشتن بهتر از داشتنه ما هم مثلا آپارتمان ساختیم عرقی واسه خودم دردسر درست کردم خلاصه اگه زمینش رو حساب نکنی این آپارتمان واسه ما صد هزار چوغ آب خورد آخ آخ آخ از من بپرس که چه سختیایی کشیدم آخ آخ منو ببین و برو شکر کن شکر میکنم من که شکایتی ندارم فقط سر سیاه زمستون زن و بچم تو کوچه میمونم دیگه هیچ شکایتی ندارم شکر فعض منو رو و عبرت بگیر آپارتمان رو ساختیم تمام کردیم بعدش یه دریختن سرمون میگفتن حتما باید به ما بفروش میگفتم بابا نمیفروشم میگفتن یه میلیون میدیم میگفتم اگه دو میلیون هم بدی نمیفروشم خلاصه چه درد سری که گرفتاری کشیدم. خدا سر گرگ بیابون نیاره اگه یه مدت خونه قم و خیشا بمونی نمیشه تو دو این دور زمونه هر کسی گیدیم خودشو از آب بکشه هنر کرده دارم دیوونه میشم دیوونه شدن بهتره تو نمیدونی صاحب آپارتمان شدن چه درد سر و گرفتاری هایی داره واسه همین حرف علکی میزنی پس من چی بگم حالا هم که دردسر مستاجر داری به دردسرم اضافه شده نمیدونی تو این زمونه مستجر داشتن چه سخته تو که گرفتایید از من بیشتر زوکایی بک تو که گرفتری نداری اگه جای من بودی چی کار میکردی برو شکر کن که جای من نیستی شکر میکنم هزار مرتبه شکر خب دیگه با اجازت مرخص میشم خداحافظ زوکایی خدا خداحافظ زوکای خدا شکری بک منو ببینو برو صد هزار مرتبه شکر که شکری بک شکری بیک از و صرف کنان به خانش را. یک دفعه طب هم کرده بود. زنش پرسید خونه پیدا کردی؟ ای بابا خانون بیا شکر بکنی از ما بدترشم هست در نظر بگیر اگه میخواستیم آپارتمان بسازیم میدونی توی این دور زمونه صاحب آپارتمان شدن چه سختیایی داره چه مشکلاتی داره یه نون خودت بخو ست نون بده به گدا که من آپارتمان نمیسید Sure.